داستان عمر جاویدان روزی روزگاری در یک شهر بسیار بسیار دور بازرگانی بود بسیار ثروتمند به نام زرجامه که تنهای پسر داشت به نام فرهاد که نور چشم او بود و قوت جانش بود فرهاد بسیار تیزهوش و باهوش بود و فرز و است. در اسب سواری و تیراندازی مانن نداشت وقتی بر اسب ابلق خودش میشست و میدوید باد به گردش نمی رسید تیرش به خطا نمی رفت همه معلماش ازش راضی بودن و میگفتند که فرهاد با یک بار شنیدن و خوندن هر درس رو یاد میگیره و از بر میشه و این پسر چشم و چراغ خونه بازرگان بود زندگی اونها به خوبی خوشی و بدون هیچ اتفاقی میگذشت. تا اینکه یه اتفاق نظم زندگی اون خانواده رو به هم ریخت داستان از این قرار بود که یه روز نزدیک غروب سوار ناشناسی در مقابل در خونه اونها از اسب پیاده شد و برای زرجامه یه پیغام فرستاد که از سفری بسیار دور باز میاد و خسته است و ممنونه که اگه بهش یک شب جای بده برای اینکه استراحت کنه و صبح فردا به راه خودش ادامه میده زرجامه که مهربان بود و مهمان نواز با عزت و احترام اون رو در خونی خودش پذیرفت و به دستورش خدمتکاران بهترین اتاق رو برای خواب و استراحت او آماده کرده بودن و اون شب سفره رنگی رو پهن کردن و خوردن و نوشیدن و بعد از اون که مهمان ناشناس خیلی خسته بود زرجامه ازش خواهش کرد که داستان سفر خودش رو روایت کنه فرهاد که در گوشه نشسته بود و کنشکاف بود که این حکایت رو بشنوه مهمانی ناشناس که پیدا بود رازی رو پنهان میکنه ابتدا انکار کرد و عاقبت در پی اصرار زرجامه به زبون اومد و گفت در این سفر شاهد چیزهایی بودم که عجیبه و باور نکردنی من عمرم رو بیشتر در سر و سفر گذروندم و عجایب بسیاری دیدم اما در این سفر با حوادثی رو روبرو شدم که مثل خواب و رویا میمونه اینجا چند لحظه مهمان ناشناس ساکت شد و به فکر رفت و بعد کلام خودش رو ادامه داد و گفت در یک سرزمین دوردست اسب میتختم و پیش میرفتم که به جنگلی رسیدم، یک جنگل انبوه. درخت درختها طوری به هم چسبیده بودند که روشنای آفتاب پیدا نبود. درختها انقدر بلند بودن که انگاری سرهاشون به آسمان سایده میشد. و از همه عجیبتر پرنده ها بودن که فوج فوج از شاخهی به شاخی دیگه میپریدن و آوازهای غریبی میخوندن. از از پیاده شدم و به آواز پرنده ها گوش دادم. تعجب کردم. مثل این بود که پرنده ها به زبان آدمی حرف میزدند. یه دست از پرنده ها سؤال میکردن و دسته دیگه جواب میدادند. حس می کردم که پرنده ها برای همدیگه از اسراری حرف می زنن که هیچ کدوم از چند و چون اونها خبر نداره. دچار وهم و خیال شده بودم. حس می کردم که پرنده ها میخوان راستی رو به من بگن یا چیزی رو از من بپرسن اما من نمیخواستم در دام وهم و خیال اسیر بشم. در بین اون جنگل انبوه پیش رفتم گاهی به ذهنم می رسید که پرنده ها به من حشدار می دن که جلوتر نرم کنشکافتر شده بودم حس میکردم کردم که در اون جنگل اسراریه که کشف اون بی حرف و خطر نیست خسته بودم دیگه تاب و توان نداشتم و در این حال بود که به فضای بازی رسیدم که مثل میدان بزرگی بود در وسط جنگل در گوشه ای از این فضای بیدرخت کلبهی بود جلوتر رفتم به کلبه رسیدم و از روزنی توی کلبه رو نگاه کردم و زنی رو دیدم که موهای سفید و بسیار بلندی داشت انقدر بلند که دور تا دور اون رو گرفته بود این زن پشت یک دستگاه بافندگی نشسته بود و چیزی بافت. کمی بیشتر دقت کردم و دیدم که اون زن مرتبا دست میبره و موهای سفید خودش رو دونه دونه میکنه و با اون موهای سفید چیزی میبافه و هر بار که دو ای از موهای سفید خودش رو میکنه موی دیگه ای به همان بلندی در جای اون درمیاد. خیال کردم که خواب می بینم کمی چشمهام و مالیدم و متوجه شدم که خواب نیستم و این چیزی که دارم می بینم در بیداریه در کلبه رو باز کردم و به داخل کلبه رفتم و در کنار اون زن و دستگاه بافندگیش ایستادم. و میدیدم که اون زن یک آن از کار خودش دستبردار نیست پشت هم موهاش رو دونه دونه میکن و با اون چیزی میبافه ازش پرسیدم ای زن خوب و مهربان چی میبافی؟ و اون زن سفید گیسو سرش رو بلند کرد و در چشمهای خیره شد صورت زیبای پریمانندی داشت دوباره ازش پرسیدم چی میبافی؟ در جواب بهم گفت پارچه می بافم که هر کس از اون لباسی درست کنه و بپوشه همیشه زنده میونه. در اینجا مسافر ناشناس ساکت شد و دیگه چیزی نگفت. زرجامه ازش خواست که دنباله داستان رو بگه و او گفت داستان من دنباله نداره. از اون کلبه بیرون اومدم و خودم رو به جاده اصلی رسوندم و انقدر رفتم و رفتم تا از اون جنگل انبوه دور شدم زرجامه گفت دوست ناشناس من چرا در اونجا نموندی و اون پارچه رو از اون زن بگیری و لباس بدوزی که به عمر جاویدان برسی مسافر ناشناس چیزی نگفت شاید از اسراری خبر داشت که نمیخواست بیش از اون چیزی بگه زرجامه با اصرار ازش خواست که نشانی اون جنگل و کلبه اون پریه بافنده رو بهش بده مسافر ناشناس گفت 20 روز تمام باید به طرف شمال اسب تازی کنی. در روز بیستم به یک بیابان میرسی و آشیانه پرنده آتش رو در بالای درختی میبینی. در اونجا باید از اسب پیادشی و آهسته آهسته در کور راهی پیش بری و رد پرواز پرنده آتش رو درخت به درخت دنبال کنی و فرسنگ ها فرسنگ ها در این کور راه بروی و از میان درختان افرا و بلود و کاج عبور کنی تا به اون جنگل انبوه برسی و از اونجا به بعد خودت میتونی بری تا اون کلبر رو پیدا کنی مسافر تازه واره دیگه چیزی نگفت و چون خیلی خسته بود به خوابگاهش رفت فرهاد که این داستان رو شنیده بود اون شب تا صبح خواب جنگل و پرنده آتش و پری بافنده رو میدید اما زرجامه چنان مجذوب این داستان شده بود که یک لحظه پلک روی هم نمیذاشت و بیدار مونده بود و در همون حال در عالم رویا فرو میرفت و پریه بافنده رو میدید که موهای سفید خودش رو دونه دونه میکند و پارچه میبافت و زرجانه از خود بیخود میشد و از اون میپرسید پارچه برای من میبافی که لباس عمر جاویدان رو باش درست کنم و این رویا دست از او بر نمی و تا صبح بارها این رویا رو در فکرش تکرار می کرد. اون شب صبح شد و مسافر ناشناس بر زین اسبش نشست و دفید و از اون حدود دور شد فرهاد اون روز به شکار رفت و داستان مسافر ناشناس رو کم و بیش به فراموشی سپرد اما زرجامه نمیتونست اون حکایت رو از یاد ببره فراموش کنه و چندین روز پیاپی و پشت سر هم به هر جا میرفت جنگل انبوه و پرنده آتش و پری بافته رو در مقابل خودش میدید و هر روز بارها در عالم خیال از پری بافنده خواهش میکرد که پارچه‌ای براش ببافه و عاقبت در برابر این رویاهای مکرر نتونست مقاومت کنه. یه صبح از زن و تنها فرزندش فرهاد خدافیزی کرد و بر زین اسب سفیدش نشست و تاختکنان دور شد. زرجامه 20 روز تمام اسب تاخت تا به بیابانی برسه و در اونجا آشیانه پرنده آتش رو در بالای درختی دید. که بالهای قرمز رنگش در نور آفتاب می درخشید از از پیاده شد و حیوان رو رها کرد که به هر کجا که میخواد بره و پای پیاده رد پرواز پرنده آتش رو درخت به درخت دنبال کرد و چندین شبانه روز رفت و رفت تا به جنگل انبو رسید و اما بشنوید از فرهاد و مادرش که هر چه صبر کردن و چشم انتظار موندن از زرجامه خبر نبود. یه هفته، دو هفته، چندین هفته پیاپی رد شد و سپری می شد و اونها بی خبر مونده بودن تا اینکه یه روز اسب سفید زرجامه را دیدن که بی سوار برگشته و فرهاد و مادرش بیشتر نگران شدن بعد از اون چندین ماه گذشت و باز هم خبری نشد یه روز صبح فرهاد از مادرش خدافیزی کرد و بر زین اسب ابلغ خودش نشست و با تاخت از خانه و سرزمین خودش دور شد اون در اون شب از اون مسافر ناشناس شنیده بود که به چه ترتیب باید به کلبه پری بافنده برسه و به همون راهی میرفت که پدرش رفته بود. 20 روز تمام به سمت شمال اسب تاخت. و در روز بیستم به دشت وسی رسید و آشیانه پرنده آتش رو در بالای درختی دید. پرهای قرمز پرنده آتش در نور آفتاب میدرخشید. از از پیاده شد، و اون رو رها کرد که بی سوار به خانه برگشت و از اون به بعد با پای پیاده میرفت و رد پرواز پرنده آتش رو دنبال میکرد و چندین شبانه روز رفت و, رفت و رفت و رفت تا به جنگل انبوه رسید و وارد جنگل شد در اونجا همانطور که مسافر ناشناس گفته بود پرنده ها رو دید که فوج فوج از ای به شاخهی دیگه می پریدن و دسته آواز می‌خواندند نفسش رو در سینه حبس کرد و به آواز پرندگان گوش داد تعجب کرد پرنده ها مثل اینکه به زبانی آشنا برای انسان با هم دیگه حرف میزدن. یه دسته سوال می‌کردند و دسته دیگه به اونها جواب می‌دادند انگاری از رازی حرف میزدن. دچار وهم و خیال شد نزدیک بود در همونجا بمونه و از اون بیشتر نره. اما همه نیرو قوتش رو جمع کرد و به راه افتاد وصللا بلای شاخ و برگ درختان راهش رو باز میکرد و پیش میرفت. جنگل انقدر انبوه بود که روشنایی آفتاب درش نفوز نمی نمیکرد و درختان انقدر بلند که انگاری سرهاشون به آسمان سایده می میشد همه نشانیها نشانی ها گواهی میداد که تا این جای را درست اومده گاهی خسته می شد و تاب و توانش رو از دست میداد، اما نیرو و قوت جوانی درش بود و با کمی مکس در گوشه ایستاد و استراحت کرد تا خستگی از تنش بیرون بره محیط خیلی تاریک شد که در اونجا روز با شب تفاوتی نداشت و او انقدر رفت و رفت و رفت تا رسید به یک فضای بیدرخت و روشن در گوشه ایستاد و به اطرافش نگاهی کرد کلبه ای رو در یک گوشه از این فضای بیدرخت دید و به طرف کلبه رفت و از روزنه نگاهی به داخل کلبه انداخت زنی رو دید با موهای سفید و بسیار بلند که پای یک دستگاه بافندگی نشسته بود و دونه دونه موهاش رو میکند و با اون پارچه میبافت و هر دانه مویش رو که میکند به همان بلندی سر جاش میروید وارد کلبه شد و جلو رفت و در کنار پری بافنده ایستاد و بهش سلام کرد پری بافنده گفت جوان تو کی هستی؟ از چه راهی اومدی؟ چطور اینجا رو پیدا کردی؟ فرهاد داستان خودش رو از اول تا آخر برا شهرداد و توضیح داد که چرا من اینجا هستم گفت اومدم پدرم رو پیدا کنم مدت هاست که به این طرف اومده و هیچ کس ازش خبر نداره پری بافنده گفت جوان من از پدرت خبری ندارم فعلا فکر اون رو از سرت بیرون کن و در اینجا بمون بلکه دوستان من بیان و از پدرت خبری داشته باشن فرهاد با تعجب بهش نگاه میکرد پریه بافنده براش توضیح داد که من در حدود صد ساله که در این کلبه زندگی میکنم جانوران، پرندگان جنگل دوستای من هستن و هر کدوم از اونها به موقع میان و کاری برای من انجام میدن یوسپلنگ برام گندم ها رو آرد میکنه خرس برام آرد میپزه سمو ظرفهامو در آب دریاچه میشوره و من کاری ندارم جز اینکه که بشینم و پارچه بوافم و در این صد سال زندگیم به خوبی و خوشی گذشته همه چیز مطابق میل من بوده همه جانوران جنگل در خدمت من هستند و در این سالهای طولانی فقط موهایم سفید شده وگرنه صورت و اندام من جوان مونده پری بافنده دیگه حرفی نزد و یه سینی بزرگ جلوش گذاشت که توی اون چند نوع غذا شینی بود مثل کباب کبوتر با چاشنی سیر و سرکه مربای فرنگی و کیک سیب که همه رو خیرس پخته و آماده کرده بود و پریه بافنده اصرار داشت که از کیک سیب بیشتر بخوره که به عقیدهش خرس در تهیه این نکه تخصص داره فرهاد که بسیار خسته و گرسنه بود با اشتها غذا قضا خورد و میخواست بره و ظرف رو بشوره که پریه بافنده بهش گفت زحمت نکش سمور میاد و ظرف رو میبر و میشوره فرهاد گیج و متحیر اطرافش رو نگاه میکرد. پری بافنده از جاش بلند شد و توشکی رو که از پوست خز درست شده بود در گوشه پهن کرد و ازش خواست که روی اون بخوابه. فرهاد بدون اینکه چیزی بگه روی تشک دراز کشید. پره بافنده لاحافی از اطلس روش انداخت و فرهاد از بس که خسته بود به خواب رفت و چیزی هم نفهمید. اما نزدیک نیمه شب از خواب بیدار شد و در رخت خوابش موند و چشم‌هاش رو بست و خودش رو به خواب زد تا ببینه در اون کلبه چه اتفاقی میفته چند دقیقه نگذشت که مرد بسیار ریز اندان لباسی از برگ‌های بلوط به داشت وارد شد و در مقابل پری بافنده تنظیمی کرد و اون مرد دیگه چیزی نگفت و رفت بعد از اون یه خرگوش وارد کلبه شد و تعظیم کرد که گوشهای درازش به زمین رسید در موقع تعظیم کردن پریه بافنده ازش پرسید خبر تازه چی داری خرگوش؟ خرگوش گفت خبری ندارم قربان و او هم رفت و یه قرباقه وارد کلبه شد و تعظیم کنان در جای خودش واایستاد پری بافنده پرسید در جنگل خبر تازه ای نیست غورباغه هم مثل بقیه گفت که خبری نیست و رفت بعد از رفتن غورباغه روباه وارد کلبه شد و تعظیم کرد پری بافنده پرسید از کجا میای روباه گفت از جنگل میام نمیدانید که چه جنگ و ستیزی بود بین فیلها چنان به جان هم افتاده بودند که میترسم فیلهای کوچکتر زیر دست و پا له بشن. پری بافنده خندید و گفت برای فیلها قصه نخور خیلی پوست گال افتن و زیر دسته هیچ کسی هم له نمیشن چیزیشون نمیشه. در همین موقع پرنده ای از پنجره وارد شد و روی دسته سندلی پری بافنده نشست. پرنده بالهای طلایی داشت و نوک نقره‌ای. پری بافنده ازش پرسید: از کجا میای؟ پرنده گفت: من در تمام جنگل‌های این اطراف دور میزنم و همه رو دیدم. بازرگانی رو دیدم که از راه دوری میومده و راهش رو گم کرده بود و در چنگ ارواح جنگل اسیر شده. پری بافنده ازش پرسید: نفهمیدی که این بازرگان برای چه کاری اومده به این جنگل پرنده گفت این بازرگان گویا در نظر داشته که پیش تو بیاد اما ارواح جنگل اون رو جادو کردن و حالا دیگه هیچ کس رو نمیشناسه و از خبری نداره و فعلا در خدمت ارواح جنگل و شب و روز برای اونها کار میکنه چوب میبره. و برای ارواح جنگل هیزم جمع میکنه. کنه پرسید به چه طریقی باید اون رو از دام جادو بیرون بیاریم تا اون بتونه گذشتهش رو به یاد بیاره پرنده گفت فقط یه را داره باید غروب آفتاب یه نفر که اون رو می شناسه از درخت بلوطی رو که نزدیک کلبه هستش در آب خیس کنه سه بار آهسته به صورت اون بزنه که در این صورت از دام جادو آزاد میشه و گذشتش رو به یاد میاره فرهاد که فهمیده بود بازرگانی که پرنده ازش حرف میزنه کسی جز پدرش نیست از جاش بلند شد و جلو رفت و از پری بافنده تشکر کرد و گفت پریه بافنده به من کمک کن تا پدرم رو پیدا کنم و اون رو از دام جادو بیرون بیارم پریه بافنده گفت خیالت راحت باشه، من به تو کمک میکنم و باهاش از کلبه بیرون اومد و شاخه از درخت بلوت رو که در بیرون کلبه بود کند و به دستش داد و قمقمه ای پر از آب کرد و گفت این دوتا چیز رو با خودت ببر. و مثل دو چیز بسیار قیمتی ازش محافظت کن راهب طولانی رو داری هر وقتش نشد شد کمی از آب قمقمه بخور و مراقب باش که ذخیره آب تموم نشه. در این راه چشمه آب وجود نداره و قبل از اینکه فرحاد حرفی بزنه پری بافنده چند بار سود زد یک روباه بزرگ از بین درختان جنگل بیرون دوید و دوان دوان خودش رو بهش رسوند و گفت پری بافنده با من چه کار دارید قربان؟ گفت این جوون رو به پشت خودت سوار کن و اون رو ببرد به سرزمین ارواح جنگل روباه در مقابل فرهاد خم شد فرهاد بر پشتش نشست و روباه مثل تیری که از کمان جسته باشد به شتاب حرکت کرد و رفت و رفت و رفت, و رفت. نزدیک ظهر اون رو به هاشیه سرزمین ارواح جنگل رسوند فرهاد ازش تشکر کرد و پای پیاده به راه خودش ادامه داد و ساعتها در اون سرزمین عجیب از این طرف به اون طرف میرفت تا اینکه عاقبت پدرش رو دید که سوار یک گاری پر از هیزم بود و به طرف کلبهای در اون نزدیکی میرفت هر چقدر صدا زد بیفایده بود ناچار دنبال گاری دوید گاری در مقابل کلبهای وایستاد و زرجامه پایین اومد تا بارهای هیزم رو به انبار پشت کلبه ببره فرهاد جلو اومد و گفت پدر صبر کن مگه من رو نمیبینی من فرهادم پسر تو زرجامه اعتناعی نکرد نه اون رو میشناخت و نه از گذشته چیزی میدونست فرهاد داستان خودش رو از اول تا آخر براش توضیح داد اما اون چیز رو به یاد نمی آورد و بدون اینکه بهش توجهی کنه مشغول جابجا جا کردن هیزمها شد فرهاد ناچار در گوشه سب کرد تا غروب آفتاب بشه. در اون موقع شاخه بلوت رو در آب خیز کرد و سه بار آهسته به صورت پدرش سد. سرجامه ناگاه به خودش اومد و گفت فرهاد تو اینجا چیکار میکنی؟ فرهاد یک بار دیگه داستان خودش رو براش روایت کرد. سرجامه همه چیز رو به خاطر آورد و فرهاد رو بغل گرفت و صورتش رو غرق بوسه کرد. و ازش پرسید از چه راهی وارد این کلبه شدی؟ گفت پری بافنده به من کمک کرد و از طریق یک روباه من رو به اینجا آورد. پری بافنده بهش گفته بود که من رو به اینجا بیاره. پدر و پسر در این گفتگو بودند که روباه بزرگ خودش رو به اونها رسوند و پشتش رو خم کرد و هر دو بر پشتش نشستند و روباه باز مثل تیری که از کمان جسته بود حرکت کرد و با سرعت اون سرزمین ارواح جنگل رو ترک کرد و چند ساعت بعد اونها در کنار کلبهٔ پره بافنده بودند از پشت روبا پایین اومدن و ازش تشکر کردند و وارد کلبه شدن. اما کلبه در همریخت و آشفته بود. از پری بافنده و دستگاه بافندگیش خبری نبود. یه یوسپلنگو، یه خرگوش و یه قرباقه و اون مرد چنبجبی که در کلبه دور هم جمع شده بودن انگاری عذا گرفته بودن. روبا که تازه از راه رسیده بود، از اونها چیزهایی پرسید و نزد زرجامه و فرهاد اومد و گفت من زبان شما انسانها رو خیلی خوب بلدم. داستان از این قراره که ارواح جنگل بعد از اینکه فهمید که شما دو نفر به کمک پری بافنده از سرزمین اونها فرار کردید بهش شک کرد. که مبادا برای هر دوی شما پارچه به تا با اون لباس درست کنید و به عمر جاویدان برسید به این علت اومدن و اون رو با دستگاه بافندگیش از اینجا به سرزمین خودشون بردن ارواح جنگل به پری بافنده گفته بود که آدمی حق نداره عمر جاودانه داشته باشه که اگه انسان ها عمرشون خیلی طولانی باشو یا عمر جاویدان پیدا کنن تعدادشون انقدر زیاد میشه که در روی کره زمین دیگه جایی برای همه پیدا نمیشه پس باید یک عده برن تا جا برای بقیه باز بشه اما پریه بافنده خیلی مهربان بود و از این راز با خبر نبود و اگه ارواح جنگل دخالت نمی کرد شاید شما دو نفر به عمر جاویدان می رسیدید. و فرهاد حرفهاش رو با دقت گوش دادن و چیزی نگفتن و باهاش هاش کردن و برای خودشون ادامه دادن تا از جنگل بیرون رفتن هر دو می دونستن که راه دور و دراز در پیش دارن اما دلشون خوش بود و آسود خاطر دیگه در فکر عمر جاویدان نبودن و آرزو داشتن هرچه زودتر به خونه برسن و در طی عمر کوتاه خود مزه خوشبختی رو بچشن از داستان عمر جاویدان این نتیجه گیری رو دارم که زمانی که این عمر به ما هدیه داده شده باید این عمر رو قدرش رو بدونیم و لحظه حال و لحظه اکنونمون که لحظه واقعیت هستش رو قدر بدونیم و لحظات گذشته و لحظات آینده رو بخوایم ازش فاصله بگیریم و لحظه حال رو قدر بدونیم و این عمر جاودانمون رو بخوایم با آگاهی سپری کنیم این عمری که به ما هدیه داده شده برای این هستش که ما بدونیم که در چه مرحله‌ای قرار داریم و میخوایم به کجا برسیم و چه رسالتی در این دنیا برای ما نهفته است که بخوایم اون رو پیدا کنیم و در این عمر که خدای مهربان به ما سپرده و ما رو دعوت به این جهان هستی داشته بخوایم ازش به خوبی و به درستی استفاده کنیم خیلی ممنونم از شما عزیزان و دوستان خوب که من رو تا انتهای این داستان افثانهی یاری کردید سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 با اصفهای تندرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته قصههای های دیو و غول و پری رشادت های, های قصهها همه و همه و همه در کانال تریکرامی هزار افسان داستان های ای صوتی ادساین مهران دوستی